مسئله را که امروز می خواهم آن صحبت کنم نیک خواهیست نیک خواهی در پرهنگ ایران چیست؟ یا چه بوده است ؟ تا اینکه معنای نیک و نیکی و نیک خواهی در پرخنگ ایران مشخص نشده است به کار بردن این واژه بی ارزش است هر کسی یا هر آموذه یا هر قدرتی هر حکومتی چیزی را نیک میداند هر مقتدری اجرای خواست و اندیشه ها و عوامر خود را نیک میداند و کار و فکر و گفتاری که بر ضد آن باشد بد و شر و گناه میداند بدین ترتیب واجه نیکی پوچو خالیست باید معنای ویژه از نیکی و نیک را و نیک خواهی را که فرهنگ ایران به این اصطلاح میداد این یک اصطلاح ایرانیست چی بود این است که باید محتوا به جان و شیرابی این نیکی را مشخص تا این اصطلاح مورد استفاده قرار نگیرد مورد سوء استفاده قرار نگیرد هر کسی هر چی که خواست آن بچپاند این که سروش در همون آغاز شاهنامه پدیدار می شود بسیار مهم است این نخستین بار در شاهنامه سروش است که نیکخواه نامیده میشود سروش نیکخواه سروش خوداست خوداست معنی معنای نیکخواه دارد چرا چون هر انسانی این خیلی مهم است هر انسانی سروش خودش را دارد این مثل جبرئیل و نیست که فقط به برگزیدگان الله و دیگران پیامبران دیگر نزول میکنند نه بلکه هر انسانی سروش و خودش رو دارد این علامت فردیت انسان و سروش این سروش و بهمن دو جفت خرداند سروش اندیشه بهمن را که خرد ضد است و در نهاد انسان است گوهر انسان است و بونه هر انسان است در گوش هر انسانی جدا کنه زمزمه می کند این اندیشه را از بهمن در گوهر انسان می گیرد که ناپدید است و میآورد و در گوش انسان زمزمه می کند. از این رو این خرد را این که سروشه که سروش باشد میگویند گوش سرود خرد و سرود گوشه، گوش گوشه در ابستا به معنای نیوشیدن گوش است به این اندیشه که از خرد از به این اندیشه این اندیشهی که سروش میابرد از خرد ضد خشم انسانی یعنی بهمن که اصل آشتی از خرد ضد خشم انسانی برخاسته بود این رو فرمان می گفتن. به این اندیشه فرمان می گفتن معنای فرمان یعنی اندیشه معنای فرمان امر و حکم و دستور نیست این اندیشه را که نهاد انسان خرد نهادی, نهادی انسان به انسان به وسیلی سروش پیام میداد این را میگفتند فرمان. انسان باید گوش به این فرمان بدهد حالا این فرمان نخوا بود. خیلی مهم است. این سروش از الله و یخوب و اوام از و اینها. امر و دستوری نمی آورد بلکه از اون چه در نهاد انسان هست از اون آتنخرد می آورد حالا این واجی نیکا ترجمه کلمه خجسته هست همینجاست که مسئله ما شروع می شود یعنی ما امکان و فرهنگ ایران رو داریم چون که سروش برای تئولوژی زرتشتی برای یزدانشناسی شناسی شکل و فرم و معنای دیگر گرفته است که با فرهنگ ایران تفاوت داشته است اون مقاومت بوده است به این خدایان هر کدام هر نحصتی که میشد به یک معنا و محتوا و شکل و رنگ و بوی دیگر میدادن حالا از این رو در همه جا میبینیم در شاهنامه یا در جاهای دیگر نزد حافظ و نزد شعرهای دیگر سروش خجسته نامیده میشود یکایی که بیامد خجسته سروش در شاهنامه یعنی که بیامد سروش خجسته دمان یا حافظ میگوید خجسته سروش مبارک خبر ببینید این بیان این است که این خوجسته صفت بیژه سروش بوده است این خرد بیان خرد انسانی است خیلی مهم است در همان آغاز شاهنامه وقتی اهریمن با نمودن نمودن مهر در پی کشتن و آوردن کیومرث است سروش می آید البته کیومرس از دید شناسی زردشتی نخستین انسان است پس بنابراین این خیلی مهم است با وجود این که از دید زردوشتی نخستین انسان باشد این معناش این است که مسئله جان انسان در بیان است سروش می آید و سیامک را از این توطعه باخبر می سازد البته بحث درباره سیامک و اینها را من به فرصت دیگر حواله می دهم چون که این خیلی بحث پیچیده می شود سروش خواستار بیگزن مندن جان انسان از آزار هست ببینید ایده قداست جان یعنی گزان ناپذیر بودن جان از همون آغاز شاهنامه شروع می شود ما باید دید داشته باشیم اینجور سطحی شاهنامه را نخونیم و درست دیده خواهد شد که این خواست او این خواست او همینی که ما میگیم نیک خواه این خواست او چیز این مهر و دوستی به جانست این خواستن به معنای اراده کردن نیست بلکه این اون چیزی که اینجا خواه آمده است این دوستی و مهرورزی است خو جسته هو جسله این از با از ریشه جد پدیدار شده است جستان از واژه جد این در اصلش این هو جد به معنای اصل مهر به یا اصل دوسیدن به ببینید اینجا معنا عمیق شد اینجا نیک معنای پیدا کرد واجه جد که این فعل ازش ساده ساخته شده است یا جد یا گد یا شد ببینید فرهنگ ایران رو چه دور این واجه تلاپوت مختلف پیدا کرده است این جد این همون جد یا همون گد یا همون شد است حالا ما میبینیم یک مقدار زیاد پدیده ها در فرهنگ ایران برای ما روشن می شود اینا مختلف یک واشن همون شیرابه و انگ زن خدا خورم یا زهره هست که روز اول هر ماه و هر سال هست این رو اهل پارس این روز اول رو اهورامزای زرد ها رو نمی گفتن. گفتن خورم جدا یعنی چی؟ یعنی شیرابه و انگ زن خدای خرم خرم جدا خدا شیرابه و انگ یا انگ جد یا انگومیست که اصل دوست، های. اصل دوستیدن دوستانیدن اصل جستن اصل به هم دادن و به هم پیبستن و با هم یگان ساختن جان هاست. هو جد، هو جسته که شده از خوجسته. یعنی به هم پیوستن و با هم دوست و یگان شدن به. با هم مهور زیدن، با هم ممضود شدن، ممضود شدن به. و پیشوند به و بهی، چنان که بارها گفتم، نام خود زهره یا خورمه. این معنا را عمیقتر چون چونکه این خواست زهره شدن است یعنی این مهر به خرم شدن مهر به زهره و بنوس شدن است انسان میخوات خرم بشود خدای خرم بشود در اوستا به همه سمخا ژه که همین جات گفتم شد. همچنان در پارسی انگ گفته می شود انگ هم همون معنای شوش و شیره و اساره همه گیاهان را دارند و چون شیره و اساره گیاهان کم و بیش همه بیجه چسبیدن و دوسیدن و جستن دارند همون شیر شمرده می شود چون که اینها در فرهنگ ایران تمام این آبکی ها آب شمرده می شدن شیر و خون و روغن و اینها همه آب بودن این است که این شرابی گیاهانم گیاهان جد آب آوه خدای ایران اسمش آوه بوده مهراب صحراب این همه این آوه هست این شیر که همون جد باشد اصل، چون که چسب است، این سمق، انگزد، این, این شیر، شیرابه، این عد در فرنگ ایران، اصل عشق و مهر و دوستی شمرده می شود. این پدیده آنها را متوجه امکان داد که بیان، اشق را جور بیان کنن؟ چیزی چیزی که می به هم ممزوج می سازد می پیوندد حالا نام شیر ببینید از این جاها میشود خیلی مطالب را پیدا کرد نام شیر از جمله جیوام است جیو شیر است و بام یا بام دو معنی دارد بام و بام یکی هم به معنای پستان و هم به معنای زن خدای عشق و مهر و دوستی است مثلا نگاه کنید شهری را که مولوی در آن زاده شده است اسمش شیربامی بلخ اسمش شیربامی بود است یعنی چی؟ یعنی شیر زن خدای عشق شیر از پستان زن خدایش عشق خود هم در اصل بق دی بق یعنی خدا زن خدا دی دی همان خرم است یعنی زن خدا خورم درست یعنی زن خدا زهره درست مولوی در این شهر زاده شده است و تا دوازده سالگی این فرهنگ را استنشاق کرده است خوب درک بکنید که این مولوی بلخی خودش تمام فلسفه او را زمینه و پیشینه فکری او را مشخص کند. حالا بنابراین شیر پستان گفتیم پستان اصلا بام است این با هم معنیش چیست؟ معنیش هم پستان است هم زن خدای عشق یعنی پستان زن خدای عشق حالا شیر پستان که شیرابه و خونابه زن خدای عشق هست اصل دوست و مهر است که در همه گیانها گیاهان و جانها هست نام دیگر شیر که آب مادر هم گفته می شود آب زندگیست این آب حیاتی که می خوب متوجه باشید به کجا برمیگردد. می گردند. متر و جیتایو متر و هم معنای مادر دارد هم معنای متر آب دارد جیتایو یعنی زندگی آب مادر همون معنای آب زندگی را دارد حالا خز در شاهنامه دنبال آب زندگی میگذد البته با اسکندر اسکندر نمیرسد ولی خیز میرسد خز چرا؟ خز گوهر چراغ دارد و این گوهر وقتی به آب نزدیک میشود روشن میشود این یارشی گوهری که به آب نزدیک می شود روشن می شود چون خزر که در اوستا خ... خ... خدره هست. که البته ده هاست که همون می شود زه. ولی اینجوری در کردی و سیستانی و اونها به عنوان خدر باقی مونده است در شوادی که خضر است در خزر به معنای تخم است و تخم با نزدیک شدن به آب سبز و روشن می شود و آب زندگی را از پستان مادر مهر می بوشد. تمام آب دنیا یعنی شیرابی دو دنیا همه شکل دریاست دریای عشق است دریای مهر است دریای دوست چون که این چیر زن خدای مهر است حالا ببینید برای ما تخم و آب دو چیز, جد دو چیز جدا از هم تصور می شود ولی در فرهنگ ایران به گونه دیگر اندیشیده می شود این همین واژه تخم که یوس که هم نامیده می شود یا یوجم هم نامیده می ببینید تخم یوس همین کلمه البته در اروپا شده است یوس که شیرابه باشد این در فرم یوش به معنای با هم خود را با هم پیوستن البته این یوش هم همین معنا را میده نیما یوشید این یوش همین معنا می را میده حالا این یوش از یک طرف معنای تخ میده از یک طرف به معنای با هم یگانه شدن با هم یکی شدن پس ببینید در خود تخم جوهر این مهر هست در خود خزر همین پیوند هست این اصل با هم شوی این اصل مهر دوستی در خود هر تخمی هست با این ویوج همون واجهه یوق و جفت و انباز هست همه های تخم در فرهنگ ایران همینجا معنا رو دارند اصلا این مردم که مرتخ باشه در خود تخم اصل مهر و دوستی هست چرا تخم تاومان تخ، خمان بوده است که همون واژه توامان شده است دانه دوانه بوده است یعنی دو به هم چسبیده بذر بازرک بوده است یعنی دو چیز به هم بافته شده ببینید در خود واژه تخم هر تخمی در دنیا اصل مهر و دوستیست این چه فرهنگی زیبایی که در این پدیده ها منعکس کردند. در واقع چرا این هست برای خاطر که در هر تخمی آتش آتش, آتش هست در فرهنگ ایران این آتش گرمی در هر تخمی اروزیشت بوده است آتش اروزیشت یعنی چی؟ یعنی مهر بوده است این در واقع این وز، وزیشت وز همون وای است یعنی در واقع وای که باد اصل اشق باشد در هر تخمی هست این هست که مرتق در خود واجه تخم هم وای هست که اصل اشق هست از این رو خضر همان وای نیکو در بندهش است. خضر در عربی معنای سبز پیدا کرده است. در بندهش دیده می شود که این وای نیکو که همین وای به باشد. این یعنی چی؟ اینی که خضره که همون وای نیکو در بوندهش هست که جامعه سبز پوشیده است و کپش چوبین کپش چوب، چوبین چوب معنای عشق دارد من در مقالات مختلف این را خوب بحث کردم حالا یعنی وای مهرامیز روی زمین میوزد این که معنای واجه جستن که جستن باشد که گفتیم از جد آمده است که معنای آمیختن و یگانه شدن دارد و از همون جد ساخته شده است در اصل به باد گفته به وزش باد گفته میشد. شود در لغتنامه هم می بینید که یکی از معنای مهم جستن وزش باد است این از کجا میاد؟ از همین جد وای جد چونکه چون که وای اصل عشق است جستدن باد چون باد یا وای در وزیدن یا جستدن با همه چیزها می و می آمیزد و از این رو همه چیزها سبز و رنگارنگ رنگ می شوند. این مهر و دوستی هست که طبیعت را زنده و بیدار و تر و تازه و میکند حافظ میگوید در, در یا و کوه در یا و کوه در راه من خسته و ضعیف ای خضر پی, ای خضر پی خوجسته پی مدد کن به همتم ای خضر پی خوجسته یعنی که پای خوجسته دارد پای وجود پای که مهرآمیز است یعنی راه که می در پایش با زمین با هم مهربرزی می کنند. انسانم همینجور است. معنای پا اصاساً اینجور است. یا میگوید یا حافظ میگوید کو پیک صبح تا گله های شب فراغ با اون خجست تاره فرخنده پی کنم. این جان آریت که به حافظ سپرد دوست روزی روخش ببینم و تسلیم وی این دوستکیس این همون خجسته طالعه فرخنده پیاست و پیکصپ پیک صپح پیک کی است است یا خرم است یا همون بییس چرا که بام داد بام داد، وام دات یعنی پیدایش بام یعنی پستان زن خدای عشق پگاه پق گاه پگ زن نارپستان رو میگوند گاه یعنی زمان یعنی صبح پیک صبح خورم هست زهر به بهیست میاد سعادت رو بهروزی بیاورد اصلا بهروچ بهروز اسم زهره است حالا این پیک صبح جدا و شیرابه و رو که اصل است را میآورد و همون خوجست و چیز اصل دوستی و خوجست طالع فرخنده پی همون بایست که خور جدار از او پیدایش می آورد. ببینید این پیوند زن خدا خوررم و وای که سی مرغ باشد پیوند یک تحول است این وای است که تحول به خرم پیدا می کند این خونیست که در پستان شیر می شود درست این شیر عشق می شود خون ارتا خون است در پستان که خور شیر می شود درست به همین, با... به همین با که اصل همه جانها بود میخواهد جان خودش را بسپارد یعنی چی؟ یعنی می به جانان به پی تو دستگیر شوه خضر پی خوجسته که من پیاده می روم و همراهان سوارانن. وای گفتیم که پای خوجسته داره پام یاد دون نره همون باد پاد یک واجه و معناش عشق است اساسا با واژه پا واژه های مربوط به زناشویی ساخته می شود که معنای عشق دارد وای است که می جدد می لنگد می دوست. با زمین و با طبیعت و با تن انسان و با گیاهان می دوست. درست در پشتو زبان پشتو معنای گد ما گفتیم که جد و گد و شد اینها همه یک باجان های مختلف یک واژن درست در پشتو معنای گد به خوبی باقی مانده است گد به معنای آمیخته و با هم مخلوط عملگام است مثلا مفرق یک عملگام است عملگام رویم است در پشتو گدیدل با هم یکی شدن رقصیدن با هم دوست و سمیون شدن با هم آمیختن و ترکیب شدن است گدوه به معنای مخلوط و آمیزش است مثلا به نانی که از حبوبات و گوناگون میپزند گدوله میگویند خوب نگاه کنید این در همین ترکیب حبوبات معروم میشه و نان میپزن این گدوله میشه حالا فورن به این اندی... همین اندیشه گد فوقلاده مهم است این به کجا برموت میشهد به مفهوم گدی به قاله میگویند گدی که معربش جدهی شده است حالا این است که خوجسته که هوجد خوجست، خوجد، خوگد باشد به معنای با هم آمیختن و با هم سمیمی و دوست شدن و دوست شدن است این واجه است که در فارسی زش شده این که ما سخت این واجه رو می چون که گدا شده ما امروز میگیم آدم گدا نیست خب با این, با این مف... چنین مفهومی خط روی معنای واجه گد و جد و جد می کشیم. در... ولی در کردی به دختر گدا میگویند چرا به دختر گدا میگویند؟ در واقع این گد چنان که گفتیم به معنای خواستار آمیزش مهرخاه هست چی شی... شیره بجد و اصل مهر از خرم از زهره است خوب متوجه دیگه گدا هم مهر منو و شما رو میخواد وقتی گدایی میکند مهری که از دل ما برخواسته است برمیخیزد میخواد تا ما تا این مهر را نداشته باشیم به او کمکی نمیکنیم ولی مفهوم مثبتش در جهانبینی ایرانی در فلسفه ایرانی در همون ستاره قطبی که جدای باشد باقی مانده است این خیلی مهم است چرا به ستاره قطبی می میکنن ستاره جده این همین جد است شیرابی به هم دادن جهان است از این رو به اون میخگاه میگویند میخ همون کلمه میخ که من جلوتر مقاب ب... گفتگو کردم یعنی جای به هم همه جهان این محور نقطه ای است که همه قطب همه جهان همه به این پیبستن. چرا پیوسته چون که به همه شیر میدهد شیر عشق میدهد شیر دوستی میدهد شیر مهر میدهد جوده نام ماه دهم ده از ماهای شمسی که مطابق با ماه دی است و بنابر بر ابو ریحان همین ماه دی همین جوده خرم نامیده میشد ببینید مسئله حل شد جدی کیست؟ خرم زن خدای عشق و زندگی ونوس. اپرودیت زهره بح و نام دیگر جدی به و بهیست این قطب, قطب آسمان را به و بهی میگوید خود چرا قطب دنیا چی است خدای عشق و دوستی و مهر و بالاخره این نام ها کمانده است؟ تمام قضایه رو پاش می کند درست از این ای متون رو زدودند و نابود کردند ولی مانده است. فقط ما نیاز دارد یک کرده مغزمون رو به کار بیندازیم یک نام دیگر هست آبامگاه هست آبام بام یعنی بام و بام که گفتیم هم به معنای پستان است هم به معنای زن خدای عشقی یعنی زهر است. و از این پستان است که همه جهان چیر مهر و دوستی و عشق می نوشند و می مکند حالا نام دیگر همین جوده ابان بوده که خود گفتیم گدی معنا یعنی بودخاله ولی می چرا به این ستاره جوده بودخاله میگن؟ این خیلی مهم است چون که امکانات تصاویری را که مردم ایران به کار میوردن البته در فرهنگ یونان و جاهای دیگر هم باقی مانده است این افکار تنها ایران نیست این نام دیگر جده ابام بوزه بوده است ابام که گفتیم مام و پستان زن خدای عشق هست. حالا بوزی که زن خدای عشق و پستان اوس این درست همین خرم است عبارت به عبارت دیگر خرم یا بی دخت را از جمله با بود بویشه بود کوهی این همانی میدادم و عکس این بود در سفالهای سیل کوین ها همه با چاخهای بسیار زیبا کشیده شده است و همین خرم را با آهو این همانی میدادم. این اینی که امام هشتم را زامن آهو میکنند یعنی زامن خدای زن خدا خرم میکنند یعنی, اما... یعنی امام هشتم هم اعتماد دارد به این خدا حالا البته به گور با گور همین همانی داده میشد ببینید اینها راههای ما را برای بازیابی مفاهیم در شاهنامه باز میکند حالا حالا برمیگردیم به خود واژه بود چون که خود واژه بود آخر چرا به بود باز گفتند این در اصل عبایستایی بوزه است بو به معنای بوی است که معنای محبت دارد و زه یعنی فرزند و نطفه بوزه به معنای نطفه محبت است فرزند محبت و البته بو معنای هستی هم دارد و شدن پس بنابراین به معنای فرزی فرزند هستی هست حالا زه چیز بو زه زه به معنای مکان جوشیدن و برآمدن آب هست زهاب از این رو به معنای جایگاه جوشیدن شیر عشق است این است که ببینید اینها یعنی زهشی است وقتی میگیم زهشی یعنی از بون انسان مهر و دوستی از بون تخم از بون هستی مهر و از دوستی و عشق پیدایش میابد نه اینی که از وعز و دستور و امر که آقا به محبت با این چیزها عشق پیدا نمیشود عشق یک چیزی از درون است که میجوشد پس جودی یا خرم یا سرچشمه جوشیدن شیر عشق و دوستی و مهر است و واژه نیکخواهی چنین محتوایی دارد کسی نیکخواه است که سرچشمه جوشش مهر و دوستی با همه هستی با همه مردمان هست ببینید تفاوت نمیگذارد در این دون جان ببینیم مؤمن و کافر و سیاه و سفید و ترک و عرب و ایرانی و اینا نیست مولوی میگوید تا ابد پستان جان پرشیر باد تا ابد چون که این خدا اسمش جان هم بود تا ابد پستان جان جیان تا ابد پستان جان پرشیر باد مادر دولت مادر مادر سعادت مادر بهروزی مادر دولت تربزاینده باد این،, این سخن شیر است در پستان جان یعنی مهریست که از پستان جان مینوشد این سخن شیر است در پستان جان بیکشنده خوش نمیگردد روان ما باید بمکیم تا این شیر پدیدار بشود تا این نیخواهی تا این مهر از هر انسانی ما باید این مهر را بکابیم کشف کنیم پیدا کنیم بجویم این که خوجسته ببینید حالا من بحث رو میخواهم خاتمه بدم با اینی که یک کرده این مفهوم خوجسته را روشنتر کرده باشم خوجسته به نیکاخ ترجمه میشود و عملا با این ترجمه تو خالی ساخته میشود. چرا فرد کنید در یزان شناسی زردوشتی خاست اهورا مزدا نیک شمرده می شود کسی که ضد اون خواست رفتار دار می کند از تو شرر از است این عملا در همه این شما به خواست به اراده محمد و الله رفتار کنید به اراده این آن رفتار کنید میگن کار خوبیست ولی ایرانی هنچه هر پیدا بلکه این هویتش از آن معین می شود که این را به نام گل همیشک دادند چون که این خدایان خیلی خود را این همانی با گیاهان می خوب گفتیم شیره گیاهان شیره گل این جادو و این ها بود از نام گل همیشک خوشاست بود این گل ها همین نام های فراوانی دارد یکی حیول عالم یکی بستان افروس، یکی اردشیر جان یکی زیمران یکی شاه اسپرم ببینید این ای نام این گل ها به ما یاری می دهند که معنا و محتوای جد و جد رو بیشتر مشخص و تشریح سازیم گل بستان اپروز در خود همون بندهش دیده می شود که گل ارتا پردر ارتا روز نوزدهم این روز نوزدهم م روز سیمرغ است روز بیستم کیست رام یا خرم است درست در پی سیمرغ میاد در پی ارتا میاد و پستان و خون شیر و خون پستان و و زن خدا خیلی مهم است که اصل اشق و مهر و زندگی است یعنی اشق و مهر از پیدایش ارتاست از این رو اشق و مهر است یا جد است که جهان همیشه زنده و سبز و خرم می شود. حالا اسم دیگر اردشیر جان است. ببینید این اسما را با دقت می شود معنایش را پیدا کرد. اردشیر ارتا خشتر است. خشتری به معنای زن است. ارتا خشتری یعنی زن خدا ارتا. برای این خاطر همه پادشاه خیلی پادشاهان هخامنشی و ساسانی اسم خودشان را اردشیر می گوزشتند. این حالا این زن خدا ارتا جان که پسوند اینهاست هاست اردشیر جان این در اصل گان بوده است گان گین گن به معنای پستان است گن و یک معنای دیگر هم دارد به شیشه و جام گفته می شود اردشیر گان یعنی پستان زن خدا و ببینید با همون مطلب رستیم و نام پستان در فرهنگ ایران جام شیر است جام جیوام است این شیر است که جد جد اصل دوسیدن و جستن و به هم پیوستن و مهر در همه جهان است حالا شاه اسپرم که ریحان باشد به معنای گیاه خوشبو هست خوشبو معناش یعنی چی؟ خوشبو یعنی اصل مهر بو بوی خوش خدای سیمر روی درختان بوس بوهای خوش هست. بو اصلا بو در زبان پارسی معناش محبت است نام پس بنابرین پس بنابراین شاه اسوررم یعنی این این گیاه چی نامیده می شود شاه اسور به طور کلی گیاهان خوشبو گفته می شود ولی چرا اینجا شاه اصوررم گفته می شود برای خاطر اینی که شاخ را فقط به ارتا میگفتن فقط به سیمرغ شاه میگفتن نام ویژه سیمرغ شاه بوده است مثل مثلا اسم کرمانشاه گرماسین بوده است این اسمش بعد شده است کرمان شاه گرماسین سیمرغ است بعد شده است کرمانشاه این نام ویژه سیمرغ شاه بوده است سپس شاهان با این نام خود را پیکریابی سیمرغ یعنی پیکریابی اصل و مهر و دوستی میدانستند و با این ادعا میخواستن حقانیت به خودشان بدن در ایران کسی حقانیت داشت که ارتاخشتر جان باشد خوب دقت بشود این خیلی مهم است و با آن که در واقعیت نبودند و قدرتشان در کشمکش و تنش با این اصل محر بود همیشه داد با مهر در تنش بودند ولی بدین سان فلسفه سیاسی و حکومتی ایران مشخص شد در آغاز ایرانیان فلسفه زندگی و اندیشه های مردمی خود را در پدیده های طبیعت بازتاب می‌کردند. این نکته خیلی مهم است این بادتاب اندیشه های مردم در طبیعت و جهان یک مطالعه نجومی و فیزیکی و بیولوژیکی نبود بلکه پیدایش فرهنگ آنها بود آنها اون ایده های خود را اندیشه های خود را در زندگی در این پدیده با این پدیده بیان میکرد. ولی ما امروزه این فلسفه را می به گونه دیگر بیان کنیم. پس بنابراین ما از این آنچه گفته شد خیلی چیزها می توانیم بیاموزیم و من در سخنرانی‌های بعد، باز این موضوع را بیشتر خواهم گسترد